اوزو بالله السمیه العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و السلام و على علی نبینا و خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم روز بخیر آرزو کنیم، ان الله که در صحت و سلامت کامل به لطف الهی هستید و ان که از هر گونه گزند و بلایی هم به دور مانید بحث ما در استعاره تمثیلیه تمام شد و گفتیم استاره تمثیلیه عبارت است تشبیه هیئتی به هیئتی دیگر و حذف هیئت مشبه و آوردن هیئت مشبه هم به به جای آن یعنی در واقع استعاره تمثیلیه استعاره مصرحه هستش مشبه هیئتش هست میشه و هیئت مشبه هم به به جای اون میشینه و علاقه مشابهت و گفتیم که قرینه هم داریم و این قرینه حالیه است و باز عرض کردیم که استعاره تمثیلیه خیلی خیلی در زبانها جایگاه داره به دلیل اینکه بیشتر استعاره تمثیلی از نوع ضرب مسئله و گفتیم زرب المثل های مورد داره یه مذرب در مورد خودش حقیقته ولی در مذربش اون چیزی که در او ضرب میشه و آورده میشه استاره تمثیلی است. بعد گفتیم هر استاره تمثیری ضرب المثل نیست اما هر ضرب المثلی که به کار میره استاره تمثیلی است. و این نشون میداد که ما استعاره تمثیلیه رو باید خوب یاد بگیریم چون دیدید که در زبانها ضرب مسئله چه جایگاهی داره و بعد عرض کردیم که ما در استعاره تمثیلیه سر سوزنی در حیعت مشبه هم به که میآوریم و میبریم برای مشبه استفاده می کنیم دخل و تصرف نمی کنیم. چرا به خاطر همینه هم هست که میگن در زربل مثل مناقشه نیست؟ چون ما حیعت مشبه هم به و آریه میگیریم، قرض میکنیم و میبریم برای مشبر استفاده میکنیم بس بنابراین هیئت مال ما, ما هم به. نباید توش دخل و تصرف کنیم یعنی نباید مثلا فرض کن اگر ما میگیم نمک رو خورد و نمک دونش رو شگزد بگیم نمک و تغییر بدیم چون نمک قیمتی نداره بلان. نه اصلا در زربون و قابلیت تغییر نیست و قاعده ای رو که عنوان کردیم بود الاسطارت تو تمثیلیت و تو قاعدش ترکیبون یعنی کلامون، حیعتون، صورتون، حالون نه همه یه چیزه یک عبارتی است که استعاره غیر ما علی استعمال شده در غیر مابوز علهش و این استعمالش هم لعلاقت مشابهته المشابهته بخاطر علاقه مشابهته مع قرینت المانعه من ارادت معناه اصلی با یه قرینه مانعه که گفتیم مجازها قرینه شون مانع است که وقتی اینجا قرینه ها خالی است حالا تعدادی المثل هم توی متن دیدید توی نموزش دیدید توی همین تمرین یکم برای اینکه شما با زربلمسل ها تا یه حدی آشنا بشید بعضی هاش رو من مثلا یه چند تایی میخونم که بریم بعد دیگه برای خلاصه بحث استعاره در جمبندیی که بعد از این نقل میکنی تو تمرین یک نگاه کنید مثلا میگه یک انکه لا تجنی من الشوکه العنبه اینو به کار میبند میگه انکه لا تجنی من الشوک العنبه بابا تو نمیتونی بچینی برداشت کنی از خار انگور. یعنی میگه این اشتباه زدی به. با قول خودمون میگن دوست ناشی به دوم میزنه تو نمیتونی از کاهدان با قول خودمون دور و جواهر بدستی تو کهدوم کاه هست این نکه لا تجنیمه نشوکه علیه نبه ها اینو مثلا برای کسی به کار میبریم که با قول خودمون به یه مسیری رفته که اون مسیر معلوم است. نتیجه نمیده مثلا فرض کنید یه آدم فقیره بخیلی رو رفته ازش فرض بکنید کمک مالی بگیره یا نکلا تجنی. یا یه آدم جاهلی رو رفته پیشش براش حل مشکل کنه میگیم نکلا تجنیمه نشوکه العنب دومی رو نگاه کنید انت تنف و خفی بابا تو داری تو خاکستر فوت میکنی آه. تو داری تو خاکستر فوت میکنی مثلا یه کسی آمده داره بده بچه خودشو میگه که این کار کردی میگه میگیم بابا تو داری تو خاکستر فوت میکنی آه. خب نه خاکستری هست نه فوت کردنی هست یعنی تو که داری بچه خودت رو میگی آه بدیش به خودت برمیگرده میگرده مثل کسی که رفته تو خاکستر فوت میکنه خب بولن میشه سلام بیری تو چشم خوردش م. سه تن تنصر در امام الخنازیر میگیم آقا در و گوهر رو جلوی خوک نریز م. یه نفری رفته یه مش آدمی که لاوبالی هستند آدمای غیر معدبی هستند داره برای اونها زحمت میکشه تا اونها مثلا معدب بشن اونها بتوانند برای اونها زحمت میکشه آدم های سالم و گذشته که اونها به یه تربیتی به یه چیزی برسن میگه آوولش کن اینا آدم نمیشن که لا تنزور الدرعما امد یه بقیهش هم همینطوره همینطور مثلا زا یه نفری که باد کرده بود تو فکر کردی چاخه یه بکار میبرن استسمنت یه نفری یکی رو میبینه خیلی اکرالش پولدار و خیلی همچین خیافش میخوره به این یه آدم فلانی باشه به با اون میچست به تملقش میکنه بعد می‌بینه ای بابا خوزش عالیه اما جیبش خالیه یه میکنه که این بابا این همه فلان ولی هیچ چیگی ما نیمه میگیم استثمنت تزا دارم. هفتش انتا تزرو فی حدید بارد یه نفر یک کسی رو اگه بی عدبی روی نصیحت میکنه این نصیحت میکنه میگیم میخواهنین نرود میخواهنین در سنگ اینجا میگه انتا تذر بفی حدید انباره بابا داری آهن سرد میکوبی آهن مثل یه میله اگر سرد باشه شما هی پتک بذارن هیچ تأثیر نداره ولی اگر اینو بگذاری تو کوره گرم بشه آه بعد بذاری رو سندان بزنی میتونی رو به اون شکلی که میخوای شمشی چاقودت دید آهن سرد میکوبه مثل اینکه آب در حاوان می. اینا زرب مثلهایی که دیگه ما باقول خودمون تعداد زیادی شده. هر کدوممون توی ذهن خودمون داریم و بعضی هاش معادل فارسی هم داریم بیایم سر مبحث بعدمون میگه بلاغت و زیبایی ستاره. زیبای زیبایی استاره حالا استاره رو بخواهی اینجا بحث کنیم فرقی نمیکنه ها زیبایی استاره استاره مسرحه مکنیه ها فرقی نمیکنه استاره به طور مطلب زیباییش از کجاها میاد یعنی چطور میشه که یه استاره مثلا ما دوتا استاره میلیم این یکی چقدر قشنگ این قشنگیش از کجا پیدا شده این بحث امروز ماست دلتگاه اگر یادتون باشه ما تو تشبیه همینو داشتیم که بلاغت و تشبیه و بعض ما ازره انل عرب و اونجا خوندیم که زیبایی تشبیه میگم هر چقدر که بایتون هست میگم هر چقدر که ارتباط بین مشبه و بعیدتر باشه به ذهن کمتر کسی برسه که اینو به این تشبیه کنه یا قوه خیال توش مدخلیت داشته باشه اون تشبیه زیباتر میشه مثل اون سوهیلون که وجنت الهب و قلب مهب فلخفوانی سوهیل مثل گونه محبوبه ما در رنگ است ستاره سوهیل و مثل قلب عاشق در تپش گفتیم کی میتونه به ذهنش برسه اول الال این یک مقداری بعید بود به ذهن هر کسی همچین چیزی بگید برس. گاهی اوقاتم با خیال هماهنگی پیدا میکنه یه مردارم قبضه خیال توش بگید مدخلیت داره و خیال میاد این رو آغشته به یک زیبایی خاص خودش اینا چیزایی بود که تو همین ها تو استعاره هم هست تو استعاره پایه و اساسش با چیه؟ با تشبیه یعنی استعاره رو ما از تشبیر می تشویر می‌سازیم واسه اگه تشویرش قشنگ باشه استعارش هم چی میشه قشنگ میشه حالا با توجه به این مطلب که براتون نمباب تکرار عرض کردم نگاه کنید من این جرا رو برای شما بخونم میگه بلاغت الستعاره سبق که. قبلن دانستی سبب لکه ان بلاغت تشبیه عاطیت من ناهیته بلاغت تشبیه از دو جهد ال اولا تعلیف و الفاظی اول اینه که الفاظش خوب کنار همچی شده شمشه این هستی یعنی اون شکل ظاهریش قشنگ و از و ابتکار و مشبهان بهی بعیدن انه رسخان ابتکار کنه یک مشبهان بهی که بعید است و کمتر به ذهنی ولی اگه بگه مثلا فرض کنید که فلانی مثل شیر است خوبی این فلانی مثل شیر همه میگن یا بگه کره زمین مثل توبه هست همه میگن گدم اینا رو ممکنه این رو تو توی اسلوب علمی به کار ببرن برای توضیح اما اینا جنبه ادبی نداره بلکه باید مشبه هم به بعید باشه از, از هستان مثل همین شعری که از ابوالعلا در مورد ستاره سهیل دیدیم و ثانیت و ابتکار مشابه مشبه بهی بعید نلل از لا ی الا فی نفس عدیب و الله له استعدادن سلیمن فی تعرف وجوه شبه دقیقت وینل اشلا که لا ی نمیچرخه این ابتکار لا لایجولا یعنی این ابتکار مشبه بهیم و اید انه از هان این ابتکار مشبه به دور از زل لا نمی شرخه نیست مگر در دل یک عدیب که خداوند بخشیده از است دو استعداد سالمی در شناخت وچه شبه های دقیق این داد یک عدیبی که خدا بهش یک استعدادی داده که میتونه بیاد بین اشیایی که به ذهن هر کسی نمیرسه اینها وقت شرح کرش کنه. مثل عبالعلای مردی که اومده بین ستاره سهیل که رنگ سرخابی داشت و در لرزش بین اون و بین گونه محبوبه و قلب عاشق ارتباط برقرار کرده و تشمی بدون عجب جمال شبیه جمالم قشنگه و خب این میشه و اوده او اوده از جای وحدت است عدیبی که خدا چنین استعدادی بهش داده و اوده او قدرتاً الا ربط المعانی و تولید بعضها من بعض الی مدن بعید لا یکاد و خدا به ودیعه نهاده است به این عدیب در نزد این عدیب عوده رو میخور به خدا ودیعه گذاشته در نزد این عدیب قدرت و توانی قدرتم قدرت و توانی بر ارتباط دادن معانی و تولید بعضی از این معانی از بعضی دیگه این قدرت هم الاب مدن به حد خیلی خیلی دور یعنی شما نمیتونید بگید که مثلا این قدرتی که خدا در آقای ابن مثلا اول علای مردی داده این دیگه اندشه تمامشه دیگه از این بالاتر نه از اول بهتر میبینیم کسی دیگه اومد میبینیم کسی دیگه اومد اینقدر این قدرت که خداوند در نهاد عدیبه مسلطه به سخن قرار میده که حد و نهایت نداره الهمدن و که بگیم اصلا بی‌نهایت لا یکادوینتی لا یکادوینتی نزدیک بگیم بی نهایت که نمیتونه باشه بی نهایت مال خداست علم بی نهایت قدرت بی‌نهایت مال میگه انقدر خدا این استعدادو در وجود انسان قرار داده آدم میتونه حد تصور کنه که این اندهار نداره عودعه قدرتاً علی ربط المعانی و تولید بعض حامنبه است الامدن به حدی که به یه قایتی که بعید است خیلی دور دست لا یکا ینده. و سر و بلاغت استاره لا, لا یتعدهات این ناهیته بلاغت استاره از این دوتا چیزی که تو تشبیه گفتیم و قبلا خونده بودیم تجاوز نمیکنه چرا؟ چون استعاره از روی تشبیه ساخته میشه و بلاقتها من ناهیت لفظ پس بلاقت استعاره از جهت لفظ یا ها یدلالا تناس تشبیه ترکیبش به گونه باشه که آدم وقتی میخونه احساس نکنه تشمیه صورت گرفت یادون هستش که ما میگفتیم هر چقدر بر بیشتر دو کلام جا بیفته اثر زیباتر میشه اثر زیباتر میشه بر شکلی بیاد که آدم تناسی میخواد فراموش کنه خودشو به فراموشی بزنه نسبت به مشوب هر چقدر این قدرت در این اینکه مشبهونبه به جای مشبه بشینه بیشتر باشه استعاره زیباتر میشه و راز بلاغت استعاره تجاوز نمیکنه از این دوتا ناهیه پس بلاغت استعاره از ناهیه لفظ از جهت لفظ اینه که ترکیبش دلالت میکنه بر تناسی تشبیه ترکیبش دلالت میکنه بر اینکه این, این تشبیه بگید ترکیبش دلالت میکنه برای این تشبیح داره فراموشی میاره یعنی جوریه که آدم احساس میکنه واقعا مشبه هم به رو داره انه ترکیبه های یه تو لعلا تناس تشبیح منظوریه که از انگاه تشبیح اینجا نیز انگاه فقط مشبه هم به هست مشبه داره کم کم به فراموشی میره برای همین هم که ما هم گفتیم ملائم مشبه هم به رو که بیاریم چی میشه؟ تقویت میشه، ترشیر میشه و ازداره میشه مرشه چرا؟ چون مشبهان به وجهانی دسته و یحملو که عمدن الان تخیل صورت جدیدت تنسی که روعتها ما تزمن الکلام کلام من تشبیه غفی مستور و یحملو که یحملو که یعنی یجبرو که یدفعو که وادار میکنه تو وادار میکنه تو رو به طور عمد به عمد تو را وادار میکنه این تشبیهی که توی کلام هست وادار میکنه تو را عمدن بر اینکه تخیل کنی خیال کنی صورت جدید صورت جدید یعنی صورت مشبهان به تنسی که که فراموشی میدهد به تو زیبایی زیبای این صورت جدید میفراموشاند به تو زیبایی این صورت جدید ما این ما مفعول دوم تونسیک است. می به تو زیباییش آنچرا که دربل گرفته کلام از تشبیهی که پنهان از تو پوشیده یعنی زیباییش یه جوریه که شما همون هیت مشبهان و احساس میکنی همون مشبهان به و احساس میکنید این زیباییش انقدر وسیعه که شما اصلا اون تشبیهی که توی کلام هست که مشبه هست شده یا مشبه به در مکنی است شده اصلا اونو احساس نمیکنی. اونی که احساس میکنی اون حیعت یا صورت مشبه هم بهه هر چقدر این بیشتر باشه استعاره قدیتر باشه پس اگر یه جایی کسی استعاره قدیتری میبینه ها برگرده ببینه که تشبیهش خیلی قویه و اصلا هیئتش و شکل این استعاره یک که جانم احساس میکنه واقعا مشبهان به تو کلامه و یحمل و کمدن علا تخیل صورت جدیده تنسی که روعتها ما تزمن احول کلامو من تشبیه خفیه مصرور والا چند تا مثال میزنه، این مثالها رو شما باید دقت کنید توش مثال هاییه که خیلی به قول خودمون سختن نیست مثال های استعاره که خوندی. انظر الى قول البهتری نگاه کن به قول جناب آقای بهتری فی الفته ابن خاقانه. که در مورد فته ابن خاقان و مده اون این طور گفت. پس ما فهمیدیم بهتری در مده فتحبن ابن خاقان که قبلا هم در مده ایشون تشویر کفته بود به ما دیده بود که ابن خاقان با شیر با شیر مبارزه میکرد درست شده نه اونجا زرقامین که گفته بود یکی شیر حقیقی بود یکی شیر مجازی بود که آقای فتح ابن خاقان بود من برای شما اول بحث استاره اون کلامش به توضیح دادیم کهش ولم لم ذر هام این هست تخم من کم ها ارائ از و تو نکسوک از ذبان، کهزبرون مشا و یقیی هزبرند و اغلبون منقومه، یقشا باصلن و چه شعرش تو ذهنمون هست، اما هواییل بحث خود در بحث مچست. حالا این آقای بهداری اینجا چی میده در فر میخوان، میگه که دیدید که این آقایون پادشاهان و اینها میامدن در یک بالکنی که داشتند در کنار کاخ خودشون در قسمت بیرونی در روزهایی که مثلا فرض میفرمایی که مردم به دیدار اینها میامدن میامدن بیرون و اظهار پاسخگویی نسبت به تهیت و سلام مردم داشتند. می تو اون باکون اظهار پاسخگویی می‌کردند و در واقع به اونها اظهار لطف می‌کردند. دستشون رو بالا می و با مردم سلام علیکم این حالت رو داره برای فتح ابن خاقان میگه گه میگه شد سما یسمو یعنی علا یعلو بالا رفت اما سما به مثل علا به اون بابای تعدی است یعنی بالا برد میگه یسمو به کفن یعنی چی؟ بالا میبرد دستی رو دست چونطوری بالا میبرد و به مردم اظهار لطف میکنه یسمو به کفن آفین نهانیت این هانیتن صفات کفه علل آفین متعلق به هانی است هانیت یعنی با عطوفته دستی مهربان را بالا میبره مهربان بلکه علل آفین آفین یعنی محتاجین اونایی که احتیاج داره پس تو این مصرت چی گفت با؟ با بالا میبره دستی رو که لطف دارد بر محتاجین دستی که بر محتاجین لطف داره تهمی صفت دوم کفه فعل مزارع م آورده دلالت بر استمرار میکنه دستی که تهمی تهمی یعنی میبارد درست شد؟ جرایان میابد میبارد خب برکی میبارد؟ خب معضومه دیگه بر آفین الان آفین دستی که میبارد بر آفین و ترفن ترفن اطرس به جای کفه دستشو که اینطوری بالا میبره به مردم تکون میده آه. چشمش هم اینطوری میاره بالا و ترفن و چشمی یعنی چشمی رو بالا میبرد الال علیا تم این تم ماه صفت تعریفه الال علیا متعلق به یعنی دوخته شده خیلی دوخته شده چشمی که بسیار دوخته شده الال علیا علیا یعنی بلند مرتبه گیار. میگه این سرش روی دوری بالا میکنه دستشان بالا میکنه به مردم تکون میده خو خب دستش مهربان است بر محتاجان و بر سر اونها میبارد و چشمش هم به بلند مرتبگی ها دوخته شده است آه؟ چشمش به این پایین دستی ها و به این کارهای کوچیک نیست چشمش به اینه که فتح مثلا هندوستان کنه به بلند مرتبگی ها مثل اینکه که مثلا جود آم کنه کرمه بینهایت کنه اینطوری چشمش به بلند مرتبگی هایه بگید خیلی خیلی خیلی بزرگ دوخته شد کسی این بیت رو بخونه تو این قسمت بکفن تحمیل بکفن علالا آفینه حانیت تحمیل اینو بخونه ازش چی میفهمه؟ میگه دستی که بالای سر محتاجان است و بر سر اونها میبارد و بر این محتاجان مهربان است و عطوفت دارد آدم میگه ای این دست نیست که عبره چرا چون میگه دستی که بر سر محتاجان میبارد اون چیزی که بر سر کسانی که احتیاج دارن میباره عبره ها؟ یعنی در واقع گفته دستی رو بالا میبره که مثل عبر بر سر افراد نیازمند میبارد و اونها رو احیا میکنه زنده میکنه. خب چه نوع استعاره‌ای؟ کف تشبیه شده به ابر، ابر حذف شده، یکی از لوازم خاصه ابر، تحمی یعنی باریدن برای کف ثابت شده. پس میشه استاره استاره مکنیه و چون کف اسمه میشه اصلیه. و چون کف اسمه میشه اصلیه درست شد پس بنابراین پس بنابراین این رو ما میبینیم که اینجا استعاره استعاره مکنیه اصلیه داریم کف تشبیه شده به عبر ابر حذف شده یکی از لوازم خاصه اون که تحمی باشه باریدن باشه برای کب صابت شد و آدم وقتی این بیتو میخونه احساس میکنه که اونی که بالای سر این مردمه دست این آقا نیست فتح ابن فاقان بلکه یه عبره عبر اومده بالای سرشون و داره میباره. نگاه کنید الافین یعنی سائلی المعروف معروف یعنی عطا یعنی درخواست کننده اطا حانیت یعنی عاطفتن شفیقتن یعنی با اطوفت و مهربان که من عرض کرد و تهمی یعنی تسیل و یعنی روان میشه میباره و ترف یعنی البسر چش، و تماه الازی یقالی فی طلب المعالی و سعی وراء کسی که مبالغه میکنه قلاف میکنه در طلب بلند مرتبیکی ها و در تلاش به دنبال آنها کسی که خیلی دنبال اینه که به بلند مرتبیکی ها خب ما اینجا استعاره دیدیم اونم از نوع استعارهیه بگید مکنیه و مجرده هم بود مجرده هم بود چون چیز ببخشید مطلقه هم بود چون بعد از اینکه تهمی تحمیه تموم شد چیزی ملایم مشبه یا مشبه دیگه در کلام نبود استاره مکنیه اصلیه مطلقه از نوع یکشم من دارم تمرینات درس قبل انگار یه تمرین نگاه کنید مثال دوم بود و, ازا سمعت قولهو و اگر شما بشنوید کلام همین آقای بحتوری رو فی رسائل متوکله در مرسیه که برای متوکل عباسی گفته و قتل قتله قیلتن و حالانکه که متوکل عباسی کشته شده بوده قیلتن قیلتن یعنی به شکل تروری اقتاله یعنی ترور کرد قیلتن یعنی ناگهانی پنهانی خب این وقت قتل قیلتن این قیلتن میشه مفعول مطلق نوعی برای قتله چون یه نوع کشتنه مفعولون مطلق نوعی پس مرسیه کرده آقای متوکل را و آمده متوکل رو در این مرسیه خودش که به شکل ترور کشته شده بوده بیان کرد حالا ببینیم چی میگه می بر اساس سمعت قوله فی الرسائل متوکل وقد قتل قیلت میگه سریعون میگه سریعون خبر مبتده محظوفه یعنی هو سریعون هو کیه اون آقای متوکل یعنی المتوکل سریعون سریع فعیله به معنای مفعوله یعنی مستروعه یعنی به خاک افتاده سرعهو یعنی به خاک انداختش کشتش دارست شد؟ امیر در نحجر بلاغه در کلمات قصارش میگه من سارعه لحقه سرعهو سارعه یعنی کشتی بگیره در بیافته من سار عل سرعهو یعنی کسی که با حق در بیفته ور میفته حق رو به زمین میزنه. پس سریعون یعنی مسرعون یعنی متوکل به خاک افتاده است خب تغازاهو لیالی هشاشتم تغازاهو تقاضا یعنی درخواست میکنه از او اللیالی یعنی روزگار خوشا مفعول دومشه هوشاشه آخر نفسیه که یک نفر در حال مرگ میکشه اینایی که دارن میمیرن اون آخرها اینطوری نفس های بریده بریده میشه اونو میگن نفس آخر رو میگن هوشاشه میگه افتاده روی زمین داره جوم میده نفس های آخرشو میکشه روزگار اومده میگه که این نفس های آخر رو بده به من روزگار ازش درخواست نفس آخر رو میکنه مشخص شو این تقاضاهو یعنی تتقاضاهو باب تفاول تفعل تفاول در مزاره معلومشون نیست تا اگر دوتا تا جمع بشه جایز یکیش هست بشه مثل تنزل از زلال ملائکتو و روح باب تفقیل از زلال ملائکتو و روح اینجا تقاضا یعنی تتقاضا درخواست میکند روزگار نفس آخر رو یعنی انگار روزگار محتاجه چطور محتاجا می آمدن؟ از این درخواست میکردن بهشون لطف کنه اینم کریم بود دست میکرد تو جیبش بهشون سکه میداد. میده الان افتاده رو زمین روزگان اومده میگه میشه این نفس آخرتو بدی به من تقاضاه و لیالی و به یجودو بها اینم میگه بیا این نفس آخرم مالتو یجودو بها اینم جود میکنه به آن و جود میکنه به این نفس آخر در حالی که مرگ مرگ او الموتو یعنی موتو هو. همرون از رو در حالی که مرگ سرخ هست پنجه های آن ناخونه های آن مرگ سرخ است ناخونه های آن شما الان تو سر این ولی موتو هم رون رو این تیک کرده که میخونی؟ دیدید که گفت چی؟ گفت این افتاده روی زمین خب نفس های آخرشو میکشه روزگار اومده میگه که این نفس آخره بده به من اینم میگه بیا اینم مال تو نفس رو میده به او و میمیره خب این نفس رو به او میده در حالی که مرک بالای سر او آه با پنجه سرخ ایستاده چون وقتی اینو میخونید چی میفهمید یعنی احساس میکنید که بگید یک شیر قوی با پنجه های بالای سر شکار خودش بایستد مرگ اینجا چه تشبیهی پیدا کرده تشبیه شده به یک درنده به یک شیر به یک پلنگ درنده سباق طرس و پنجه های خونی نداره سرخی داره بالای او ایست شاهدش کجاست اون عزافر الموت عزافر الموت پنجه های مرگ سرخ است مرگ مگه پنجه داره عزافر جمع ازفار ازفار جمع ظفر یعنی چنگال چنگال‌های مرگ سرخ است مرگ تشبیه شده به سبع مرگ تشبیه شده به سبع درنده سبع حذف شده از فار که از لوازم خواسته سبع هستش برای مرگ ثابت شده استاره داره مکنیه است استعاره داره بگید مکنیه است میگه فهل تستطيع ان تبعد عن خیالک؟ آیا تو میتونی این شعر رو بخونی و دور کنی از ذهن خودت هاذه زه صورت المخيفه این صورت وحشتناک مرگ ترسناک مرگ رو از ذهنت بیرون کنی میتونی رو بخونی و صورت ترسناک مرگ رو توش نبینی میگه اون صورت کدومه میگه وهیا صورت و حیوان مفترس یعنی زب صورت یک حیوان درنده زر لجت از به دماغ قتلاه که زر یعنی لطخط آغشته شده که آغشته شده پنجه های او به خونه شکار شده هاش کشته شده هاش قتله جمع قتیله کشته شده هاش یعنی نمیتونی تو این رو بخونی و این تصور رو تو ذهنت نیاد که مرگ مثل یک گرگ با پنجه های خونین بالای سره بگیر کشته خجرده خود خودش وای صده. این به ذهنت میرسه چه بخواهی چه نخونی پس استاره استاره مکنیه شد و بسیار هم زیبا. البته اون تیکه اولش هم که میگه تغازاه و لیالی هشاشتن تغازاه و لیالی هشاشتن باز لیالی روزگار تشبیه شده به یه طلبکار به یه طلبکار که اومده داره تقاضایه بگی طلب خودشون میکنه، روزگار که چیزی نیست که ما ببینیم. ولی روزگار رو تشبیه کرده به یک آدم طلبکار و قداری که اومده وایستده و میگه اینو بده به من. آه؟ یعنی شکل بقول خودمون زنده قابل تجسم پیدا کرده. یعنی انگار گفته روزگار مثل یک طلبکار قلداری طالب نفس آخر اوست. طلبگار هست شده. طلب کردنش که تقاضاها لیالی باشه برای لیالی ثابت شده. اون هم استار مکنی است. دارد شد. ولی این دومی رو که تشبیه به گور کرده، تشبیه به درنده کرده با پنجه های خونین این رو توضیح خوب سری اون تغازاه و لیالی هشاشتن یجود و به ها و الموتو این حالی است و الموتو هم ران از افره این نگاه کنید از سری المطروح و علل عرض المصروح و علل عرز. افتاده روی زمین و تغازاهو ها اصلهو ها تغازا ها. ها تا تغازاهو حوزفت اهدت تاین و هو به قولهم قول هم میگه تغازاهو یعنی چی میگه از قول خود این عرب ها گرفته شده این فیلم این معناست که تقاظت دا اینو دینه تقاظت دا اینو دینه یعنی اون دین گذار دین خودش رو طلب کرد درست شد ازا قبضه زمانی که اون دینش رو میگیره میگن تقاظه یعنی درخواستش رو میکنه میخواد بگیره وله خوش آشه و روح فلمریز تهمونده جان یعنی اون نفس آخر درست شد در مریض و مجروح جریح یعنی مجروح درست شد کسی که افتاده و نفس آخرش یسفهو به انهو ملغن علالعرض توصیف میکنه این آقا رو به اینکه که افتاده روی زمین یلفظ ان نفس الاخیر من حیاته و داره یلفزو بیرون میده ان نفس نفس آخرش رو از زندگی داره نفس آخر از زندگی خودش رو بگش خب حالا نگاه کنید میگه اگر ما پایه استعارمون درست شد بر روی تشبیه خب چرا همون تشبیه رو نگر رفتیم سراغ استعاره من یعنی گفته بودم چون استعاره مبالغش از تشبیه چیه بیشتره مبالغش از تشبیه بیشتره. چرا؟ چون تو تشبیه هر کارم که شما بکنید خلاصه آخرش میشه تشبیه بلیغ مشبه هست مشبه آمده هم هست دوتان اما در استعاره شما یک طرف رو دارید یعنی فراموشی تشبیه تو اینجا چیه؟ بیشتره فراموشی تشبیه اینجا بیشتره و ما گفتیم پایه و اساس زیبایی در استعاره بر تناسیه تشبیه بر تناسیه تشبیه پس ببینیم همون مطالب سابق خودمونو ما داریم با شما دوره میکنیم چیزی جدیدی نبکنیم لحاظا کانتل استعانت و من از تشبیه البریق استعاره از تشبیه بلیق مبالغش بیشتره ابلغ یعنی مبالغش بیشتره نه بلیغتره مبالغه استعاره بیشتر از تشبیه بلیغه لعنهو و ان بنیه علی دعای انل المشبه و به سوا زیرا این تشبیه تشبیه بلیغ تشبیه. زیرا این تشبیه بلیغ اگر چه پای ریزی شده بر اینکه ادعا بشه مشبه و مشبهان به یکی هستن سوا مصاویه یعنی میگه زیدان خوباین از عسدون زید شیره است پایو اساسش اینه که زید خود شیره مساوی شیره اما لا یزالو و التشبیهو منویا ملهوظان ولی باز نگاه که میکنیم میبینیم که فیه از در بلیغ پیوسته تشبیه هم در نیت هست هم لحاظ شده چون هم مشبه تو کلام هم مشبهآن به دوگانگی اینها بودن هر دوتا نشون دهنده اینه که اینا دوتا چیزی. به خلافاف استارت خلاف است استارارت تو نیز و تشبیه ها منسی و مجبور در اینجا در استارت تشبیه هم منسی فراموش شده هستش هم مجهود انکار شده از اسه نیوردیم یکی از طرف این تشبیه مشخص شد این خودش خیلیه یعنی نشون دهنده اینی که ما از هم دوتا نیستن ادعا اینقدر رفته بالا با قرینه میفرمیم و منزالکه یزهر و لکه میگه از همینجا معلوم میشه براتون چی معلوم میشه؟ این که و منزالکه یزهر لکه از اینجا ظاهر میشه برای تو که انل استارت المرشهت ابلغو من المطلقت که استاره مرشهه که ملارم مشبهان به تو کلام هست این بلاغتش بیشتر چیز مبالغش بیشتر است از،, از مطلقه چرا چون مشبهان به و داره جا میندازه بلاغه مشبهان به دازه. و انل مطلقتر و این که مطلقه حالا چه نوع علف نوع به این ابلاغ و منل مجرده مبالغش بیشتر از مجرد مجرده است. چرا چون لاغه نقطه منفی نداره اما مجرده پایین ترینشه. نشه چرا چون داره یه ذره مشبه رو جا میندازه و پایه و اساس مبالغه یه در گفتیم بر اینه که تناسیه تشمی بشه و مشبه هم به تو کلام شد یافته این ها مطالبیه که خونده شده گفته شده قیل اما بریم سر ابتکار الان چند تا مثال بزنه یک دو سه چهار تا مثال بزنه چهار تا مثال چهار تا شعر که تو این شعرها شما می بینید استاره هست خب از نظر لفظی هم همشون خوبن. هم. اما یک هنرمندی در خمیر مایه استاره هست خوش کنید یه هنرمندی در خمیر مایه استاره است. درسته که این استاره آورده اونم استاره آورده هر دو هم از نظر شکل و خیافه استاره هاشون قشنگه از نظر لفظی برابر هم. اما از نظر محتوا ها این یکی تشبیه خیلی پرمغزتر و زیباتر از اون یکیه به محتوا هم باید نگاه کرد ابتکار در معنا حالا اگر این رو دقت کنید ما اینجا می‌بینیم اما ولاوت الاستعاره من حیث من و روعتل ابت... و خیاده اما بلاغت است از جهت نوآوری ابتکار و زیبایی خیال. خیال توش بیشتره. نوآوری توش بیشتره. و ما تهده این اثر بینفوس نفوس سامعی ها و آنچه که احداث میکنه، ایجاد میکنه این استعاره که عبارت باشه از اثری که میگذاره در روح شنوندگانش. ببینیم که چه اثری در روح شنوندگانش میذاره این ازداره از این زیبایی خیالی که توشه و از این ابتکاری که توشه ما میخواییم بحث کنیم پس اما بلاغت ازداره از جهت نوآوری و زیبایی خیال در او و آنچه که احداث میکنه ایجاد میکنه این ازداره آن را که عبارت باشد از تأثیر در روح شنوندگانش از این جهت می‌خویم بیایم بحث کنیم خب خیلی قشنگه ما میخوایم بیایم استعاره رو از لحاظ محتوا بحث کنیم نگاه کنین فمجالٌ اما بلاغت استدار از این جهت فمجالٌ در للابتدار مجال یعنی یه زمینه وسیعیه برای ابداع نوآوری و میدانون و یک میدانیس است لتسابق المجیدین فمن فرسان الكلام یک میدانیس برای مسابقه دادن خوبها مجیدین از سواران سخن سواران سخن اینجا یه میدان وسیعی است بیان تاخت و تاز کنن ما ببینیم کدومشون چند مرده هر از جهت ابتکار، نوآوری از جهت تأثیر معنای اون در روح شنونده از این لحاظ میخوایم بررسی کنیم انظر حالا نگاه کن چهار شعر مثال گفتیم میزنه اما یک دونه مثالش که مثال اوله کلام خداست فوق همه این اشعار و مطالب میگه انظر الی قولهی عزش شعنه نگاه کن به قول خداوندی که شعن او عزیز باد فی وصف نار در توصیف جهنم نگاه کنید بهشت در داره یک سری دربان داره برای تشریفات از ملایکه بهشتی ها از در بهشت وارد میشن اون بهشت رو براشون آزیم بندی میکنن و اون ملایکه الهی به استقبال اینها میان بهشون خوش آمدگویی میکنن تحییت و سلام به اینا میدن اینا چیزاییه که دو قرآن هست در مورد اهل پیش در مورد جهنم جهنمی ها نیست که خودشون با پای خودشون برن به طرف جهنم در بازخون بیمه تو. نه جهنم ها رو با چک و لغد رو زور میبرن سیغل لزین کفر رو الى جهنم هست قولشون میدن و می بعد هم جهنم ظاهرا گوده یعنی یه گودالی است آ اینطوری تصور میشه که میارن اینها رو خالی میکنن مثل آشغال که توی کوره میریزن برای سوختن اینطوری میریزن تو. بعد هم جهنم دربان داره که اینا فرار نکنند شکنجهگر داره که اینا رو شکنجه بده و اینها رو داغ رفش داشته باشه و اینها در واقع این به جایی که بهشون خوش آمدگویی کنن و سلام کنن به اینا زخم زبون میزنن علم یه اتکم نزی خاکتون سرتون کسی نبود بهتون بگه و غیره و غیره اینها حالا نگاه کنید در مورد جهنم چی میگه میگه تکاد و تمیزو این تمیزو یعنی تتمیزو یکی از تاها افتاده چون فعل مزاره خبر افعال مغاربه میشه دیگه و این هم زو هستش اون زو نشون میده این فعل مزاره که مرفو شده تتمیزو یکی اتا افتاده تکاد و تتمیزو من القیز قیز یعنی خشم القیز یعنی قیزه ها محل میگن عوض از مضافی نگیم از خشمش خب کلما الگیه القا یعنی پرد کرد الگیه یعنی پرد کرده شود انداخته فی فیها یعنی در جهنم فوجون فوج یعنی دسته گروه دسته و گروه مثل اینکه که یه کامیون آشغال میارن خالی میکنن این اینها هم همینطور یه دسته از جهنم چرا دسته چون هر کسی رو می دنبال اون امام خودشون کسی رو که تو دنیا دنبال او را افتاده و به جهنم رفته هر کی میخواد باشه باشه اون آدم فاسدی که این تابع او شده و به جهنم رفته او جلو را می بقیه هم دنبالش همه رو با هم دیگه می تو جهنم کلما الغیفی ها فوجان خوب سعلتهم خزنتها خزنه جمع خازنه نگهبان نگهبانهای جهنم به اینها گرد علم یعتکم نظیر آیا نیمده بود برای شما پیش شما نظیر نظیر فعیله به معنا مفعله یعنی منظر مثل حکیم به معنای محکم مثل علیم با همزه به معنای معلم یعنی دردآور نظیر یعنی منظر آیا بیم دهنده ای بود رسولی نیامده بود به شما بگه قیامتی هم هست خب الان نگاه کنید باز دوباره تکاد زمین داخلش میخوره به جهنم تتمیزو هم همینطور طور خبرشه منل غیز من غیزا همینجا شاید میگه نزدیک است تتمیزو تتمیزو یعنی تتشقق خب. که بترکه نزدیک از منفجر بشه بدتره که جهنم ها منقیزه ها از خشمش نزدیکه که جهنم بگید منفجر بشه از خشم وای این طوری داره میده. دیدید یا نه میگه فلانی وقتی چشمش مثلا به قاتل پدرش افتاد ها وای وای, وای وای وای یکاد و یتمیی از اومیند خیز نزدیک بود از خشم به دیگه چه جوری میشه مثلا یه کسی ببینه پدرش یه نفر زده کشته قاتل پدرشو آوردن این چجوری میشه خون تو بدنش میجنبه چشاش میزنه بیرون همشه به قلبش شروع میکنه به زربان شدید دستاش میلرزه جوری که میخواد بگیره خفه کنه همشه اینطوری برنید شد این میشه دیگه این داره همه حالتو بره جهنم میگه میگه جهنم داره می خود بدتر که از خشم. کل کلما اولقی یا فیها فوجون هر دفعه که میارن بریزن توش یه هر دفعه که جهنمیایی رو میبینن میارن بریزن توش خالی کنن این جهنمیارو تو جهنم این جهنم خود اصلا از خشم بر اینها بدتره که سهلت خون خزنت ها از این هایی که میارن بریزن از این فوج سوال میکنن خازنین جهنم علم یعتکم کن نزیر. آخه خاک برون سرتون برای توبیخ سوال میکنه نه برین جان شما کسی نگفته بود بهتون اینجایی هست شاهد ما سر اون تکاوت و تمک یزوست شما اینجا رو بخونید جهنم رو چجوری فرض میکنید جهنم گودال آتشینه دیگه خب اینو چجوری فرض میکنید وقتی میخونید فرض میکنید به عنوان یک موجود زنده با شعور خشنگین نسبت به یک کسی که ناجوان مردی کرده یک کسی که حرف گوش نکرده، کار خطایی کرده این موجود خشمگین خونش به جوش اومده میخواد بگیره اون رو کنه اینو میفهمید دیگه یعنی استعاره ستاره مکنیه است جهنم تشبیه شده به یک موجود زنده قالب قادر پر از قدرت عصبانی خشمگین تشبیه شده به اون یه همچین موجودی هست شده صفاتش اومده برای جهنم ثابت شده میگه تکاوت و تمیز و منالغیس کلما اولغیفیها فوجان سألهم خزنت علم یعتکم الان نگاه کنید ترتسم و امامکه انناره این آیه در مقابل توتره ترسیم میکنه آتش جهنم رو فی صورت مخلوقه در شکل یک آفریده شده زنده در شکل یک موجود زنده مخلوق زخم خیلی قوی بزرگ بدتاش خیلی قدرتمند مکفهر رلوش خیلی اخم کرده و عصبانی. آب ابوس عبوس مکفرد یعنی رو ترش کرده آبس یعنی عبوس اخمو عصبانی یقلا صدر و و غیزا که سینش داره میجوشه از کینه و خشم یه همچین موجودی یک همچین قول عظیم و شعنی با همه قدرت و عظمت جلوی چشمی ما ظاهر میشه چند نه به عنوان گودالا به این شکلی حاضرش میکنی. خیلی زیبا بود. استاره مکنیه بسیار قشنگ. یالا این یکی را نگاه کنید. سمم زلیل قول قول عبالعتاهیه. نگاه کن به قول آقای عبالعتاهیه. فی تحنیت المهدی خلافت در تحنیت و مبارکباد به مهدی عباسی در این که به خلافت رسیده بود. مهدی عباسی که به خلافت رسیده آقای عبولتاهیه براش شیشه رو بود خب جالب نگاه کنید میگه اتت هل خلافت خلافت می آید به سوی مهدی یعن به مهدی این خلافت خواهید این خلافت خدمت مهدی میآید یعنی دیگران می دوان برن به خلافت برسن اما مهدی عباسی نشسته خلافت به سراغ او می‌آید خلافت به سراغ او می آید. حالا ببینید چه جوری میگه میاد منقادتا مطیع یعنی کاملا دلخواه منقادت، راضی منقادتن, منقادتن. اِلایهی الیه مقدم شده بر تجره رو مفید حسره یعنی به این منقادتا حال اوله برای خلافت الیه تجره رو این جمله حال دومه برای خلافت الیه تجره رو ازیاله ها ازیال جمع زیله زیل هاشیه لباس رو میگن این لباس های بلند پایینش یه سری هاشیه دوزی میکردن این هاشیه های رنگی و ریشهایی که داشته نمی از یال لباس جرره یعنی کشید جر را باب تفعیله یعنی خیلی کشید بسیار کشید میگه الیهه میکشد کشد به سوی مهدی بسیار زیاد دامان لباس خودش را از اینجا خلافت رو اومده تشبیه کرده به یک عروس زیبا عروس قدیم این شکل بوده که داماد در خانه خود در هجله می شسته عروس با کمال عظمت و تبختر و تکبر دامنکشان که توی شعر فارسی خودمون هست دامنکشان، با اون لباس عروس می آمده و به هجله میرفته خب اینجا ببین چی میگه میگه این عروس عروسی بسیار بسیار متکبر یعنی نسبت به کسانی دیگه چموشه اصلا نگاه هم نمیکنه. اما اینجا مونقادتن مطیب رام رام آقای مهدی عباسی شده این خلافت عروس کنه بعد فقط هم به سوی مهدی عباسی می کشد دامان خیش دامان کشان فقط به سوی مهدی عباسی می آید اونم تجره رو بسیار میکشد یعنی داره تن, تن میاد که به هجله آقای مهدی عباسی درآید، خلافت داره با کمال رضایت به شکل زیبا عروسگونه به طرف مهدی عباسی میاد اینجا اگه آدم به خونه احساس میکنه خلافت یک عروس زیباست دامنکشان با کمال طبختور داره میاد و میخواهد به زوج خودش که آقای مهدی عباسیه برسه میشه تصویر قشنگی اینکه شما خلافت رو به یک عروس تشبیه کنید اونم به این شکل که دارد در شب عروسی دامن کشان میاد خب این از تشبیحات زیباست نگاه کنید میگه تجد و اندل خلافت قاده قاده یعنی یه ملکه زیبایی یک زیبارویی است خلافت یک زیبارویی است عروسی است حیفا میان باریک خیلی با ناز و ادا ملولان خیلی با عشبه فتنم ناسوبه ها جمعی ها همه مردم عاشقشن همه این زیباروی رو میخوام مفتونش شدن اما وحیت ها با علیه هم. و حالان که او از همه شون میکن هیچ گلومشون بهشون نیگاه نمیکن و تصده ایرازن تصده یعنی تو آرزو، و از همه شون رو برمیگردن اما بلا که نها تأتیل مهدی اما او میاد خدمت آقای مهدی عباسی تاعتن با کمال میل تاعت فی دلال و جمال دلال یعنی ناز در ناز و زیبایی میاد سراغ مهدی عباسی تجر رو از یالها که میکشد دامان خیش را تیهن و خف را با کبر و قرور با کبر و ناز و عدار داره عروسگونه میاد سراغ مهدی اباسی میگه حاذهی صورتون این یه شکل لا شک رائعتن شک نداریم قشنگی ابدع ابوالعطاحیه تصویرها اب العطاهیه هم اینه ابداع کرده ما قبل از اون ندیدیم کسی خلاقت رو تشبیه به عروس کرده باشه ابدع اب والعطاحیه تصویرها و ستب قهول وطن و این صورتی که با اختراک کرده شیرین میماند فلسما در گوشها ها حبی وطن و میماند دوست داشتنی پیش مردمان الان النفوس ما بقی از زمان تا دنیا دنیاست. الان ما داریم بعد از هزار خورده سال میخونیم احساس زیبایی کنه قشنگ قشنگی که از بین نگاه کنید ثم حالا این مال قران بود آیه شریفه بعد آقای ابوالعطایه رو آقای رو خوندیم از شاعرای دوره عباسی بعد آمدیم الان میایم به معاصر فکر نکنید میایم تو معاصرم نگاه کنید بخونیم میگه که ثم اسم قول البارودی سپس نگاه کن این شعر آقای سامی بارودی رو درست شد؟ این ببینید چی میکه. من شعر رو میخونم شما خودتونم متوجه قشنگی میگه ازا ازاستل من ناسیدون قرب سیفی قرب یعنی تیغه تیغه سیف یعنی شمشیر تیغه شمشیرش رو قرب سیفی سیدون یعنی سالاری بزرگی دهان منا یعنی از ما استل یعنی استل سیفهو یعنی شمشیرش از غلاف کشید اون دیگه شعر میتونید منو کنه هنگامی که از غلاف کشد هنگامی که از غلاف بکشد سالاری از ما تیغه شمشیرش را و چیزی نداره یه سالاری از ماه هنگامی که تیغه شمشیرش رو از قلاف بکشه حالا تیغه شمشیر رو که از قلاف میکشن شما حتما توی فیلمه یا جای مختلف دیدید شمشیر رو که از قلاف میکشن یه صدایی میده خش این دو دیگر صدای کشیدن این شمشیر از قلاف حتما توی ذهن شما هست میگه وقتی که سالاری از ما شمشیر خودش رو میکشه تفزعت الافلاک به لرزه میافتن کراد افلاک به لرزه میافتن التفت الدهر و روزگار یه دفعه سرشو برمیگردونه التفت مثلا من دارم یه جایی نگاه میکنم یا یه چیزی رو میخونم یا یه صدایی بلند میشه از این طرف سرام اسمی برمیگرده التفت ها میگه روزگار صدای این شمشیرو رو که میشنوه یه دفعه برمیگردونه و کرات همه به لرزه بینفتن الان شما اینجا چی دارید میفهمید یعنی الان افلاک کرات شدن مثل انسانهایی که بگید از یه صدای وحشت انگیزی تنشون داره میلرزه. این لرزه به تنشون میافته. مال ادماست مال کرات نیست این چرخوندن سر و متوجه شدنم مال آدمهاست مال دهر نیست اینجا دهر و افلاک به شکل چی در آمدن؟ به شکل موجودات زنده انسان که میتونه از ترس تنش بلرزه و میتونه از ترس یه دفعه زرشو برگردونه آه به سامانای مکنیه قشنگی است هم در تفضیت الافلاک هم در التفتت ده درست شد؟ میگه و خبرنی به من اطلاع بده اما تو حسو از آنچه که احساس میکنی و اما ینتابو کرد و آنچه که به تو میرسد منحول از ترس از من ما از ترس اون چیزی که میشنبی توی شهر یه دفعه احساس میکنه همه کورات دارن لرزه به تنشون افتاد لرزه بر تن کورات میافتد و روزگار سر برمی گرداند اینا. و قول لنا چیفه خطرت فی نفسه که صورت الاجران سماویت العظیمته حیتن حساستن ترته دو فزهن و به میگه به ما بگو چگونه خطور میکنه وقتی این شعر رو میخونی در ذهن تو. شکل کرات آسمانی عظیم این شکل اینها به شکلی در میاد که حییتن کیفه خطرت فی نفسه که صورت و نجسام سمابیت اینها خطور میکنه در ذهن شما به شکل یک موجود زنده حساس که میشنوند و میترسند ترتعدو که لرزه به تنشون افتاده نیدرزند فضعن و وهلا از ترس و وحشت و کیفت تا دهر و چگونه وقتی این شعر رو بخونی تو ذهنت میاد روزگار و خوبه یلتف تو دهشان و زهولا که این روزگار یک دفعه از وحشت و قفلت که قافل بوده از این صدا اصلا داشت توجهش نبوده یه دفعه میترسه سرشو برمیگرد ما میگه افلاک آسمانی لرزه بر تنشان و روزگار سر بر می از ترس سرشو بر می گردون. روزگار که همه از دستش در امانند میگه از ترسش سرشو بر می گردوند آسمانی که چیزی بزرگتر از اون نیست لرزه به تنشان خبی استعارای مکنی خیلی بشنگ خود تمام شد حالا نگاه کنید س مسم قول هوی منفاق و دوباره یه شعر از آقای بارودی میخونیم در منفای خودش گفته در محلی که تبعیدش کرده بودن. و هوا نحبول یه سه و اون نهح یعنی منحوب چاپیده شده ناامیدی بوده و آرزو گوش کنید یه چیزی بگم. یه کسی رو که تبعید میکنه یا یه کسی که توی زندانه، می‌روش تبعیدش میکنند یا توی زندانه این آدم دو نوع احساس درش هست یک احساسش میگه بابا من یک سری آدم دارم بیرون و رفقا دارم منو نجات میدن آرزو داره که نجات پیدا کنم چشم امیدی به نجاتش از زندان داره یا چشم امیدی به نجاتش از تبعیدگاه داره که اوضا برگرده و این بیاد یه یعصی هم در وجودشه که این یعص میگه بابا که میاد دون نجات داری. اینجا دیگه آخر خطه تموم بکاره اینم هم یعصه همه اونهایی که تو تبعید هستن این دو نوع احساس رو دارن یا تو زندان اصلا این دو نوع رو دارن حالا کم و زیاد میشه اگر مثلا جنبه ناامیدی بیشتر باشه یعنی او قوه حاکمه خیلی قدرتمنده اینی گرفته تو قبضه خودش اگر جنبه امیدش بیشتر باشه احساس میکنه اینا ضعیفن الان میان و از چنگال اینها اینو درش میاره اینم توی اون دوتا بوده معمولا گوش کنید معمولا اون قسمتی که یعص رو بررسی میکنه ذهنه چون ذهن دو دوتا چهارتا میکنه آه اون. اون قسمتی که بیشتر امیدوار است دونم نمیدونم. بغول خودمون بیشتر به اینکه آزاد میشیم میریم تموم میشه اینها به هستش اون قلبه دلش دل معمولا اون که میخواد تصور میکنه که آزاد شدن و این آز... آرزو توی دل اما اون یأس و ناامیدیه تو ذهنه چون ذهن دو, دو تا چارتا میکنه، بالا پایین میکنه میگه نمیشه. اما دل کاری به این کاره نداره دل میگه من آزادی رو میخوام دوست داره بره. درست شد. میگه این توی تبعیدگاه خودش، مورد حجوم بوده نهب بوده منحوب بوده چاپیده شده یه این دوتا احساس بوده این دوتا احساس بر او غلبه کرده حالا ببینید چی میگه میگه اصمه و فی نفسی میگه میشنوم در دل خودم فی نفسی دبیب المنا دبیب مستر دب دب یعنی یواش راه هم. یواش راه رفتن مرچه مار که رو زمین میخزه میگن دب دبت الحیتو دبت النملتو یعنی روی زمین یواش یواش راه رفت حتی دبابه تانک خودشو میکشه رو زمین میره از عمیره. دبیب یعنی راه رفتن آروم المناجم است یعنی آرزو میگه میشنوم در وجود خودم راه لفتن آرام و آهسته یا آرزوها رو یعنی چی؟ یعنی اینطوری گوشم میذارم دم دلم آه تو سینم گوشم که میذارم احساس موید تک, تک تک تک تک صدای پای آرزوها رو که داره تو دلم راه میرن میشنون صدای پای آرزوها رو در دل خود میشنون اما و اما با این گوشه چشمم نگاه میکنم به مغزم و علمه ها از شبحته. شبهه یعنی همون ناامیدی نشدن نمیشه و این شبهه و ناامیدی و نشدن رو هم میبینم فی خاطری تو ذهنم انگار سرش اینطوری کچ کرده یه گوشش طرف قلبشه تک تک تک تک صدای پای آرزوها که رفتن از اینجا و رسیدن به خانواده و پیروز شدن و اینا رو میشنوه با این یکی چشش داره مغزش رو نگاه میکنه تو مغزش میگه نه بابا کجایی کاری تمامه؟ اینجا دیگه راهی برای فرار نیست و علمه و شب حتی فکراته. شما اگر این شعر رو با این شکلی که من براتون خوندم نگاه کنید چی میفهمید؟ یعنی آرزوها رو توی اینجا به شکل بگید موجودات زنده‌ای می‌بینید که دارن تو دل این راه میرن و تک و تک صدای پاشون میاد و از اون طرف شبهرم به شکل یک موجود تاریک و زنده‌ای می‌بینید که تو ذهنش داره راه میره. و الا آرزو معناست، اسم معناست، مفهوم شبه و نشدن و ناامیدیم مفهومه. درست شد ولی این مفاهیم تو اینجا به شکلی شدن که میشنوه صدای پاشونو و میبینه شکل و شون علمه ها یعنی با گوش چشم هم میبینن با گوش چشمش داره کیو میبینه؟ ناامیدی رو در کجا تو ذهنش؟ با گوشش داره میشنوه تو کجا تو دلش؟ چیو صدای پای آرزورو؟ رو؟؟ استارای مکنی است. نگاه کنید میگه تجدو انهو رس عمله که صورتن دل میبینی که او شکلی از آرزو برای شما تصویر داده یتمشا تمشا به نفس که داره گام میزنه قدم میزنه در روح او در دل او تمشیان محسا راه نفتنی که احساس میشه یسم اوهو به اوزانه و این اون رو با گوشش میشنه و ام زنونه و این که گمان ها دلشوره و این که گمان و دلشوره یعنی همون ناامیدی ها ها گمان و دلشوره ها. درست شد سار اله ها جسمون دارای جسم شده یه شبه دارن شکل دارن میبینم شبهه اونها رو یعنی جسم اونها رو درست شد سانه لحظ جسمون یراهو به اینه اون داره علم ها با چشمش میبین هل رحیت ابداع فوق هاست آیا ابداعی بالاتر از این میبینید تصویرهی در اینکه که شکل داده اشک و العمل ناامیدی و امید رو تصویر داده یا تجازبان در کنار هم به هم غفل شدن یکی رو صدای پاشو میشنوه یکی رو داره با گوشه چشمش میبینه و هر رعی تماکانل الاستعارت البارعت من الاسطرفی دا. آیا واقعا تو میبینیم اون مقداری که برای این استعاره زیبا هست از تأثیر در این نوآوری، این نوآوری زیبا رو میبینیم؟ خیلی هشنگ حالا آخریش دیگه حسابی قشنگه مال مرحوم شریف رزیز صاحب نحر بلاغه و خیلی خیلی تصویر زیبایی داده این رو هم بخوانم دیگه کارتون تمام هستی یعنی شما دیگه مقول خودمون از این اشعار زیبا هم استفاده من سمنظر قبلش شریف رزیف ودا، یکی از موضوعات شعری وداه ودا یعنی جایی که به خودمون معشوق داره از آشق جدا میشه این یکی از موضوعات شعریه خب به هنگام ودا چگونه است به هنگام ودا معمولا آشق گریانه چون داره معشوق میره دیگه م? دل میره و زدستم زد صاحب دل داره میره رود. پس بنابراین او گریانه ولی از طرف دیگه از طرف دیگه سعی میکنه که گریه کردنش رو هم کسی نبینه شد چرا؟ چون به دو دلیل یکی اینکه میگه روغبایی هستن این محشوق من های زیادی داره خواستگارهای زیادی داره اونا ها اگه ببینن که من به گریه افتادم اونا دلشون خونک میشه رقبا تعبیر ازش میکنن خب لذا این در پنهانی گریه میکنه با اون شاعر میگه در زیر باران گریستم تا تو اشکم را نبینی خب میاد یه همچین کاری رو که رقبا لاغل دلشاد نشند مطلب دوم که تو اشکم را نبینی یعنی چی؟ یعنی مفزنی میکنه گریه کردنش رو یه جوری کنترل کنه یه جوری بیتابیش رو کنه که این آخری لحظه که حالا برای داره جدایی اتفاق میافته، اون معشوق آزار نبینه چون هیچ چه به آزار معشوق خودش راضی نیست این ودا با این شکلی که من گفتم و ارز کردم که درش گریه هست بیتابی هست ولی خودکنترلی هم از طرف عاشق هست تار و قبا نبینند و معشوق هم آزار نبیند. اینو داشته باشید تا اینجا. مطلب دوم قدیم لباس هایی که می پوشیدند این لباس ها مثل این قبایی که اولا مثلا ایرانیان قدیم می پوشیدند و الان روحانیون می پوشند اینها یه حالت یقه هفت داشته و یه لباس بلند بوده دیگه مثل مانتوانا بعد اینا دکمه که نداشتند یعنی با دکمه چیز نمی اینها میآمدن یه لایه رو می زیر یه لایه رو روش می بعد یه شال می روش این شال این دو لایه رو نگه می داشت مثل این با قول خودمون جلوش دیگه باز نبود این لایه زیر میآمد رو یه اون یکی درست شد یه لایه روی اون یکی واقع میشد به شکل هفت یقهش میافتاد بعد دور کمر شال می‌بستن حالا اگر گوش اگر یه کسی می‌خواست یه مثلا پولی داشت کیسه چیزی پولی چیزی داشت اینو توی یقه خودش که می‌گذاشت چون شالو بسته بود این حفظ می‌شد دیگه نمیافتاد مثل که مثلا الان ما پیران بپوشیم از لای دکمهای پیرنمون مثلا یه چیزی رو بذاریم توی لباس خب چون کمربند رستیم نگه حالا اگر یک موقعی یک کسی هم میخواست مثلا یه چیزی رو سرقت بکنه چکار میکرد؟ مثلا سرشو دللا میکرد وقتی سرتو دلا کنی یقه میاد پایین یهو یواشکی اون چیزو مینداخت توی اقش منداخت توی دیگه خب دیده دیگه حالا نگاه کنید چی میگه؟ میگه که نصر قوم عدمع عدمع یعنی دمعنا دم یعنی اشک. عاشق چشم دیدن رفتن معشوقشو نداره لذا سرشو میدوزد پایین دیدید آدم ها. سحنه های ناجور رو نمیتونه نگاه کنه معمولا سرشو میدوز سرش می پایین خب میگه نصر قدمع ما میدوزدیم عشق هامونو یعنی سرمون میندازیم پایین اشکا همین دندندم میاد اینا رو یکی یکی میگیریم میندازیم توی یقمون میگیریم میندازیم توی یقمون سرمون پایینه نه نگاه کنیم چشم دیدن رفتن رو نداریم اشکا همین دور داره میاد این یعنی اشکا رو میگیریم میندازیم توی یقه‌مون میندازیم توی یقه‌مون نصر قد دمع فلجیوب فل یعنی فی بنا، جیب یعنی جریبان یعنی همون ی اشخار رو هی میدوزیم جالبم از میگه میدوزیم میخواد سرعت عملشو نشون بده تントン اشکر تントン از روی گونمون میگیریم میندازیم تو یقمون میندازیم تو یقمون حیائا میحیائا مفعول لهه به جهت خجالتی که میکشیم چرا چون رقبا وای دادند ها میگن ای بابا نگاه کن چی سوز و گدازی پیدا کرده قا نصر قدم افلجویو به حیاب عشقها میگیریم میندازیم توی گریبان خودمون که نه معشوق ببینه و نه رغبا ببینن از سر حیاب حالا جالبه اینکه که نصر قدم میگه یعنی میدازیم یعنی به سرعت عمل میکنیم عشقها رو میدازیم توی عبا بین اینکه که رو میدازیم توی عزه اینوار این عشقها مرواریدند و سرقت براش به کار برده که این عشقها رو که مثل موروارید هستش میدازدیم و میندازیم توی اقامون چون خجالت میکشیم که روغبا ما رو ببینن اون تیکه دومش یه ربطی به این استعاله نداره ولی دنباله شعر میگه درسته ما عشقها رو میندازیم توی اقامون درسته که معشوقمونم داره میره ولی اینطور نیست که آنچه از دیده رود از دل رود نه نه نه آنچه از دیده رفته در دل مانده نظام میگه و بنا و در ما هست ما بنا آنچه در ما بود و در ما هست آنچه در ما هست منل اشماقه از عشق و اشتیاض عشق و اشتیاق سر جای خودشه آنچه در ما بود از عشق و اشتیاق سر جای خودشه بنا خبر مقدم ما مبتدا ما بنای بنا سله ماست اون به واقعا بیانشه داد شد میگه و بود در ما و هست در ما آنچه که هست از شوق و اشتیاق شوق و اشتیاق کم نمیشه که بگی آنچه از دیده رود از دید رود نه داریم خداحافظی میکنیم مجبوریم نسبت به این ماست میگه خوبه یصل قدم او می دوسته شد حتی لا یوسمه به زعف و خبر ساعت الودا لا یوسمه یعنی لا تا متهم نشه به زعف و سستی خبر هنگام به متهم به اینها نشه وقت کان یستتی ان یقول میگه نگاه کنید چقدر قشنگ به کار برده میگه میتونست بگه نسترو دمعفل جویو به من نسترو و نسترو یه وزن دارن شعرم وزنش قرار نمیشه ولی نگفته میپوشونیم اشک رو در گریوان هامون گفته میدوزیم میخواد سرعت عمل نشون بده میخواد بگه اشک های ما مثل مروارید قیمتیه اشک های مروارید گونامونو میندازیم تو یقهمون بلاکه نهو یرید و ما و الی نهایت المرتقا فی سهر البیان بلکه اون میخواد برسه به نهایت اوج مرتقا بلندی در معجزه بیان در سهر بیان میخواد برسه به اون نقطه و این نل زیرا کلمه نسرقا ترس مفی خیالی که صورتن زیرا نه نسرقا ترسیم میکنه در ذهن تو یک شکلی شدت خوفه از شدت خوفش که انقدر میترسه چون دوست سریع میندازه تو یهت که نبینن شدت خوفهی ان از حرفی اثر رو نستر. چون ترس داره که مبادا یه سر سوزنی اثر ضعف در او دیده شه و رغبا خوشحال بشم میگه عشقانو می, می به سرعت ولی مهارت هی و نشون میده مهارت او رو و سرعت هی فی اخفای دم نشون میده مهارتش مهارتشو و سرعتشو در پنهان کردن اشک عشق عیون رغبا از چشم فریفان از چشم و دیگه خواستگاران دیگه بعد میگه ولولا زیق و نتاقه هازل کتاب اگر نبود تنگنای چارچوب این کتاب لعرز نالایی که کسی در منصور این استعاره تلوید. ما عرضه میکردیم بر تو خیلی از شکلهای استعاره های زیبا استعاره زیبا می میآوردیم اینجا کلام پنج دارو گفتیم ولکه نانه ولی ما معتقدیم انما قدمناه و و غنا. ما معتقدیم آنچه که برای تو گفتیم برای تو آوردیم فیه کفایتون و قنا درش هم کفایت هست بسه هم قنا فایده نهایی توش هست یعنی شما بی نیاز هستی و کفایت میکنه کار شما همین مقدار و زیاد هم هست پایین میگه هاشیه میگه میگه قرب و سیف حد و تفضعت یعنی زعرت می لرزه ای عصابها از زعر و خوف یعنی به او رسیده زعر یعنی ترس تفضعت یعنی ترس به جانش افتاده لرزه به جانش افتاده تفزعت الافلاک ولدفتت درست استاره به طور مطلق تمام شد انشاءالله دوشنبه مجاز مرسل رو خواهیم خوند درست شد و حواستون باشه اگر میخواهید کاری رو انجام بدید این بحث آخر استعاره رو هم مثال هاش رو خوب جمبندی کنید و استعاره رو بفهمید استعاره قبلا یاد بگیرید که انشالله این مباحث در پیش شما به عنوان امانت باشه تا آخر عمرتون استفاده کنید چون اینها بحثی نیستش که به عنوان قول خودمو خونده رو رفتن باشه نه اینا تو زندگی آدم هم تاثیر داره شعری رو به خونه زیباییشو درک میکنه کلامی رو بشنوه زیباییشو درک میکنه بخواد حرف بزنه قشنگ حرف میزنه و تسلط بر روح و جان مردم پیدا میکنه موفق و معید باشید ان و سلام علیکم و رحمت الله ببره